داستان ماهی نورافشان پیرمرد مهربونی بود که پسراش مرده بودن و پیرمرد نمیدونست که چجوری با همسر مریضش باید روزگار خودشون رو بگذرونن هر روز میرفت جنگل و هیزم تهیه میکرد دستهیه هیزمها رو میفروخت تا بتونه برای خودش نونی بخره و خودش و همسرش رو از گرسنگی نجات بده یه روز که نالهکنان به جنگل رفته بود به مردی با ریش های بلند رسید که بهش گفت از رنچ تو خبر دارم و میخوام کمکت کنم این صد تا سکه رو بگیر مال تو باشه پیرمرد مرد صد تا سکر رو گرفت و از حال رفت وقتی به خودش اومد دیگه اون مرد ریش بلند ناپدید شده بود مرد به خونش برگشت بدون اینکه چیزی به همسرش بگه صد تا سکه رو زیر یک اپه پهن توی خونش قایم کرد با خودش گفت اگه اینا رو به همسرم بگم و از این صد تا سکه خبر داشته باشه حتما همه رو به هدر میده صبح روز بعد مثل روزای قبل دوباره به جنگل رفت شب که به خونه برگشت دید که همسرش فراش یه سفره رنگین پر از غذاهای خوشمزه آماده کرده دلواپس شد از همسرش پرسید این همه چیزو چطور تهیه کردی زنشم گفت پهنا رو فروختم پیرمرد گفت ای وای من من اونجا صد تا سکه قایم کرده بودم ولی دیگه کاری نمیشد انجام داد صبح روز بعد پیرمرد مثل روزهای قبلش با آه هزاری تو جنگل را میرفت رفت که دوباره باز با همون مرد مواجه شد. این بار پیرمرد ریش بلند بهش گفت از بد اقبالیت خبر دارم اما باید صبور باشی اینم صد تا سکه دیگه. پیرمرد خوشحال شد با سکه ها برگشت خونه ولی این بار سکه ها رو زیر یک کپ خاک سر قایم کرد. زنش روز بعد دوباره خاک سرارم فروخته بود و یه سفره رنگین دیگه برای پیرمرد توی خونه آماده کرده بود. وقتی پیرمرد به خونه برگشت و موضوع رو فهمید حتی یه لقمه از اون غذاها نخورد. با آه و ناله رفت به رخت خوابش تا به صبح شده بود. و دوباره پیرمرد توی جنگل راه میرفت و گریه و زاری میکرد. توی جنگل برای بار سوم دوباره با اون مرد ریش بلند مواجه شد. پیرمرد مرد ریش بلند بهش گفت این بار دیگه بهت پول نمیدم. این 24 تا گرباقه رو بگیر و بفروششون. با پولشون یه ماهی بخر. بزرگترین ماهی که میتونی باش بخر. پیرمرد مرد ها رو گرفت و به بازار برد و فروختشون. و یه ماهی خرید. شب توی خونه متوجه شد که اون ماهی خیلی داره میدرخشه. یه نوری ازش بیرون میزنه که همه جا رو روشن میکنه. درست مثل یه فانوس بود. اون شب برای اینکه ماهی تو هوای خونک باشه پیرمرد اون رو از پنجره به بیرون آویزون کرد. اون شب خیلی هوا تاریک بود. طوفانی هم بود. ماهی گیرایی که وسط دریا بودن بین امواج راه برگشتشون رو پیدا نمیکردن. ولی با دیدن نوری که از پنجره خونه پیرمرد به بیرون میتابید، ماهیگیرها تونسته بودن، پارو بزنن و جون خودشون رو نجات بدن. صبح که به ساحل رسیدن اومدن دم خونه پیرمرد و نصفی از سیدشون رو به اون دادن. و بهش گفتن اگه اون ماهی رو هر شب به پنجره خونت آویزون کنی، ما سید هر شبمون رو بهات نصف میکنیم پیرمردم خوشحال شد و هر روز این کار رو براشون انجام میداد اینجوری بود که پیرمرد مهربون از فقر نجات پیدا کرده بود سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها هایی از غول ها و کوتوله ها